استان موشی بازرگان روزی از روزها در یه شهر در حلقه بازرگانانی که درباره مهارتشان در تجارت گفتگو کردند تاجری اینطوری صحبت کرد چندان عجیب نیست که مردی در خرج کردن پولش صرفه جو باشه و به ثروت برسه اما من با آنکه روزگاری بی پول بودم به ثروت رسیدم پدرم پیش از تولد من مرد و خیشان نابکاردار و نداره مادرم گرفتند. طوری که او از ترس و برای حفظ کودک متولد نشدهش فرار کرد و در خانه کوماراداتا دوست پدرم موند. من در اونجا از اون مادر ارجمند زاده شدم تا تنها حافظ و حامی او باشم و او با انجام کارهای مردانه منو بزرگ کرد. سپس با آنکه خیلی فقیر بود، آموزگاری رو راضی کرد تا منو به شاگردی بپذیرد، چنانکه کم کم نوشتن و حساب یاد گرفتم. بعد به من گفت: تو پسر یه بازرگان هستی، بنابر این حالا دیگه پسرجان باید به تجارت بپردازی. بازرگانی ثروتمندی در این ناحیه هست که اسمش ویشاک هیلا هست او به آدم‌های تنگدستی که از های خوب باشن، سرمایه اعتباری میده. بنابراین برو و از اون نصیه بگیر بعد فوراً به دیدنش رفتم اما در همون لحظه ویشا کیلا داشت با لحنی غذا بالود با یه پسر تاجر حرف میزد و می گفت آدم زرنگ حتی میتونه از این موش مرده که می بینی رو زمین افتاده به عنوان سرمایه تجارت پولش استفاده کنه من به تو کلی سکه دادم سود که نبردی هیچ حتی اصل سرمایه رو هم نتونستی درست نگهداری. این رو که شنیدم بیدرنگ به ویشاکیلا گفتم من این موش مرده رو به عنوان سرمایه نسیه از شما میگیرم و با این کلمات موش رو برداشتم و بعد از اون که اون در دفتر حسابش وارد کردم از پیشش رفتم در حالی که تاجر از خنده رود شده بود در برابر دو مشت نخود موش رو به یه تاجر دادم تا به گربش بده بعد اون نخدا رو آسیاب کردم و کوزه ای آب برداشتم رفتم و بیرون شهر در تقاطع جاده ها در سایه ایستادم. در اونجا آب خنک و نخودها رو با عدب تمام به دسته ای از هیزمشکنها که خسته به خونشون برمیگشتن تعارف کردم. هر یک از هیزمشکنها از روی حقشناسی دو تکه چوب به من داد. فورا اون چوبا رو به بازار بردم و فروختم، بعد با همون پول اندک نخود بیشتری خریدم و روز بعد به همین چیوه از هیزم شکنها چوب گرفتم. هر روز این کار رو کردم و سرمایه اندوختم و تمام محصول چوب سه روزه رو از هیزم شکنها خریدم. از سر اتفاق به خاطر بارون بسیار زیادی که بارید چوب کم شد و بنابراین همه اون چوبا رو در برابر ست ها سکه فروختم، به این صورت با اون پول مغازه دست و پا کردم و تجارت ادامه دادم و کم کم به یاری مهارت خود خیلی ثروتمند شدم. بعد موشی از طلا ساختم و اون رو نزد ویشاک هیلا فرستادم که او هم با توجه به اون دخترش رو به همسری من در آورد. به همین دلیلی که مردم منو موشی صدا میزنن چون با اون که روزی بی پول بودم به توانگری رسیدم با همون موش مرده ساده بازرگانان دیگه وقتی این حرفها رو شنیدن همگی حیرت کردند و به هوش اون پسر آفرین گفتند قصه ما تمام شد یا خوشبختی پیش از اینها در این سرزمین شهری بود که پادشاهش ملازم جوانی داشت از کشاترییا شاه با اون که بخشنده بود اما به هیچ وجه چیزی به یاشو وارمان نمیداد او یه جنگجو بود یاشو وارمان هر موقع تنگ دست میشد و چیزی میخواست شاه به خورشید اشاره میکرد و میگفت دلم میخواد چیزی به تو بدم اما این خدای شنگیز اجازه نمیده خب حالا چه کار باید بکنم به من بگو بنابراین مرد در فقر و بدبختی زندگی می کرد و منتظر فرصت بود تا آنکه روزی خورشید گرفت و یاشووارمان مثل همیشه به عنوان ملازم به حضور شاه که سخت مشغول بخشیدن هیه های بزرگ و بسیار بود رفت و خبر داد سرورم که اجازه نمیداد به من چیزی بدید اون خورشید به کام دشمن فرو رفته بنابراین همین حالا چیزی به من بدید، شاه اینو شنید، خندید و چون پیش از اون هدایای بسیاری به افراد دیگه داده بود، به او هم جامع و طلا و چیزهای دیگه داد. وقتی سربت یاشووارمان کم کم مصرف شد و به ته رسید، دوباره مستمند شد، چون اربابش دیگه چیزی بهش نداد. باری چون همسرش مرده بود پیش دورگا الههی که در کوههای ویندهی زندگی میکرد رفت و گفت زندگی کردن با پیکر اینقدر بی ارزش که انگار مرده چه سودی داره؟ من در حضور الهه اونو ترک میکنم یا اون چرا میخوام به دست میارم؟ و بیدرنگ در برابر الهه روی علفهای دروش شده یک کوشا دراز کشید و در حالی که ذهنش رو بر اون الهه متمرکز کرده بود، با پرهیز از هر گونه غذا ای بزرگ کرد بعد الهه در خواب خودش رو بهش نشون داد و گفت من از تو خورسندم پسرم و نعمت ثروت یا چیزی غیر از اون رو که شادی بخش باشه به تو میدم بگو کدوم رو میخوای یه شوارمان اینو شنید و به الهه جواب داد دقیقا نمیدونم تفاوت میان این دو نعمت چیه بعد الهه جواب داد به کشورت و به دیدار دو بازرگان به نامهای بهوگا وارمان و آرسا وارمان برو و درباره ثروتشان تحقیق کن. هر کدومو که پسندیدی به اینجا بیا و دوباره تقاضا کن. یاشو وارمان بعد از شنیدن این سخنان صبح فردا بیدار شد و روزش رو افتار کرد و سپس به کاوت کاپورا در کشور خودش رفت. در اونجا نخست به خانه آرسا وارمان رفت که ثروتش طلا و جواهرات بیشمار و چیزهای دیگه بود و همه رو از راه تجارت به دست آورده بود. یاشو وارمان با دیدن مال و منال او رسم ادب رو به جا آورد و تاجر هم به عنوان مهمان به او خوش آمد گفت و او رو به سر سفره خودش خوند. به این ترتیب و در کنار آرسا وارمان از خوردن کاری، گوشت و روغن که بسیار با به دندان مهمان بود لذت برد اما آرسا وارمان تنها خوراک جو با نیم پیمان روغن و مقدار کمی برنج و کاری خورد یاشو وارمان از روی کنجکاوی از تاجر پرسید تاجر چرا اینقدر کم غذا می او پاسخ داد امروز به احترام شما این مقدار کم برنج، کاری و روغن و مقداری خوراک جو خوردم. اما معمولاً چیز زیادی نمیخورم چون مده ضعیفی دارم و بیشتر از این نمیتونم هضم کنم. یاشو وارمان اینو شنید و به فکر فرو رفت و درباره سرنوشت فلاکتبار آرسا وارمان اندیشه‌های بدی به ذهنش رسید. شب که شد آرسو وارمان دوباره دستور داد که برای یاشو وارمان شیر برنج بیارند. اما باز هم هنگامی که یاشو وارمان تا حد سیری و با لذت غذا خورده بود، آرسو وارمان تنها پیمانی کوچیکی شیر نوشید. بعد هر دو در همان اتاق به تخت خواب خود رفتند و کم کم خوابشون برد. یاشو وارمان اون شب در خواب دید که چند مرد با قیافه وحشتناک و چماغهای در دست بی‌شرمانه وارد اتاق شدند و با عصبانیت گفتند: بدبخت چرا امروز یه ذره روغن و کاری بیشتر از آنچه اجازه داشتی خوردی؟ چرا اضافه بر اون یه پیمان شیرم خوردی؟ و پای آرسا وارمان رو گرفتن و اون رو روی زمین کشیدند و با چماق‌هاشون اون رو زدند و برنج و گوشت و شیر و روغنی رو که بیشتر از حد مجاز مصرف کرده بود از شکمش بیرون آوردند. یاشو وارمان اینو که دید بیدار شد و دوروبر خودش رو نگاه کرد و دید که آرسا وارمان بیداره. و درد شدیدی به سراغش اومده. بعد آرسا وارمان همچنان که خدمتکارانش شکمش رو مشتمال می همه یه چیزهایی رو که اضافی خورده بود بالا آورد. وقتی بالاخره دردش تسکین پیدا کرد یاشو وارمان با خودش گفت توف بر چنین مال و ثروتی این زندگی چه لذتی داره اینجور چیزها رو که با آدم تعارف کنن تبدیل به مرگ و بدبختی میشه و با این فکر بقیه شب رو گذروند صبح روز بعد یاشو وارمان به آرسو وارمان کرد و به خانه بهوگا وارمان بازرگان رفت در آنجا با ادب تمام سلام کرد و تاجر با احترام تمام دعوتش کرد که با هم به غذا خوردن بنشینند یاشو هیچ ثروت انباشته ای رو که از آن بازرگان باشه در اونجا ندید تنها چیزی که دید خونه ای با سوزیورهای برهای زیاد بود بعد در حالی که یاشووارمان کنار بازرگان ایستاده بود او به شیوه خودش به کسب و کار مشغول شد کالاهایی رو که گرفته و در اونجا گذاشته بود فوراً به یکی دیگه داد و بدون اون که از خودش پولی داشته باشه از طریق واسطه‌گری پول درآورد. بعد فوراً اون پول رو به خدمتکاری داد تا به همسرش بده تا او بتونه همینو خوردنی و نوشیدنی تهیه کنه در این هنگام ناگهان دوستی به سرعت نزد بهوگا به وارمان اومد و بهش گفت غذای ما آماده است برخیز و بیا بریم تا غذا بخوریم بقیه دوستان اونجا منتظر دیدن شما هستند اما او گفت امروز نمیام چون اینجا مهمون دارم در این صورت او هم رفیق ماست اونو هم بیار زود باش و بهوگا به وارمان با اصرار و سماجت زیاد دوستش همراه با یاشو وارمان رفت اونا بهترین غذاها رو خوردند و غروب پس از نوشیدن شربت به خونه برگشتند و غذایی مرکب از انواع خوردنی ها و نوشیدنی ها صرف کردند. وقتی که شب رسید به هوگاوارمان وارمان از خدمت پرسید آیا برای بقیه شب شربت و اندازه کافی برای ما دوتا هست؟ و وقتی اونا جواب دادن نه، تاجر خودش رو به درون بستر انداخت و گفت چطور میتونیم تمام شب رو آب بخوریم؟ بعد یاشو وارمان که کنارش خوابیده بود در خواب دو مرد رو دید که وارد خونش شدند و ائدی هم دنبالشون اومدند اونایی که چوب به دست داشتن به اونایی که اول اومده بودن گفتند چرا برای آخر شب به هوگا وارمان به فکر شربت نبودین شما بدبختا کدوم گودی رفته بودی و با این حرفها با خشم تمام اونا را زیر ضربه های چماقاشون گرفتند بعد مردانی که کتک میخوردند فریاد زدند خواهش میکنیم این اشتباه رو بر ما ببخشید و بعد همه بیرون رفتند وقتی یاشو وارمان اینو دید بیدار شد و فکر کرد لذتی که به هوگا وارمان از اون بحرمنده و اون چه به طور غیر منتظر نصیب انسان میشه ستایش شنگیزه اما دولت و سروتی که آرسا وارمان از اون برخورداره با اون که خیلی هنگفته اما توهی از لذته و با این افکار بقیه شب رو خوابید. صبح روز بعد یا شوارمان با تاجر نیکبخت خداحافظی کرد و دوباره به آستان دورگاه الهه ساکن در کوههای ویندهیا رفت و اون نوع زندگی رو که الهه در نخواستی ملاقاتشون وقتی او به عنوان توبه کار به آستانش رفته بود پیشنهاد کرده بود بازگو کرد و به دورگاه گفت که از اون دو زندگی یه زندگی بالذت رو برگزیده دورگاه این سعادت رو به او ارزانی داشت و او به خانه برگشت و به لطف آن ایزدبانو مهرمند از سعادت لذتی که بدون نیاز و بدون ذره ای فکر و خیال پیش میومد در اونجا موند و خیردمندان می دونند که زندگی بی لذت کم ارزشتر از زندگی سرشار از لذته هرچند که این زندگی کوتاه باشه